فصل ششم وقتی از خانه بیرون آمدم آسمان آبی درخشان بود اما بعد برخ چنان ناگهانی شروع به بارش کرد که ظرف نیم ساعت همه جا یک دست سفید شد وقتی از کنار قلعه میگذشتم دیدم که قلعه به که تزئین شده میماند و سفید و زخیم خامه اطرافش را گرفته است به زور راهم را هم در مسیر ماشین رو باز کردم صدای پایم نمی آمد و انگشتانم بیهست شده بود بالدوی ابریشمی نازک چینی تنم بود و از سرما میلرزیدم از سربی رنگ و تقریبا پوشیده از برف لایه های سفید و قطور بخار خارج میشد هیچ صدایی به گوش نمیرسید و به طرز غریبی آهنگ دنیا آهسته شده بود آن طرف پرچین اصلاح شده توی خیابان اتومبیلها با احتیاط بیشتری عبور میکردند آبرین پیاده سر میخوردند و جیغ میکشیدند. شال گردن را روی بینی کشیدم و با خودم گفتم کاش کفش مناسبتر از کفش کتانی و لباسی گرمتر از مخمل پوشیده بودم. در اوج تعجب من نیتن نبود که در را رو برویم باز کرد بلکه پدر ویل بود. در آستانه در در و از همانجا نگاهی با آسمان کرد. از رخت خواب بیرون نیومده حالش خوب نیست. نمیدونم دونم به دکتر زنگ بزنم یا نه. نیتن کجاست؟ صبح مرخصی گرفت. البته فقط امروز. فرستار لعنتی آجان سری اومد و رفت. اگه برف همینطور ادامه پیدا کنه نمیدونم باید چیکار کنم. شانه بالا انداخت. انگار هیچ کاری نمی‌شات کرد. بعد هم برگشت و توی راه رو به راه افتاد. پیدا بود که حالا خیالش راحت شده است. با آمدن من مسئولیت از دوش او برداشته شده بود. از پشت سر گفت تو میدونی به چه چیزایی نیاز داره؟ درسته؟ پالتو و کفشم را در آوردم. میدانستم خانوم ترینر سر کار رفته است. در تقویم آشباسخانه ویل روزهای کاریش را علامت میزد. جوراب های خیسم را روی رادیاتور گذاشتن تا خشک شوند. یک جفت جوراب ویل داخل سبد لباس شسته بود. من هم پوشیدم. به شکل خندهداری برای پاهای من بزرگ بود، اما به اینکه پاهایم گرم و خشک شوند می‌ارزید. ویل را صدا زدم، ولی جواب نداد. بعد برایش نوشیدنی درست کردم. به در ضربه زدم و به داخل اتاق سرک کشیدم. زیر نور ضعیف صبحگاهی فقط توانستم اندامش را زیر لحاف تشخیص بدهم. به خواب عمیقی فرو رفته بود. قدمی به عقب برداشتم. در را پشت سرم بستم رفتم و سرگرم کار شدم ظاهرا نیکخانه ی نظم و ترتیب به مادرم حس رضایت میداد اما من با اینکه یک ماه میشد هر روز به کار نظافت و جاروکشی پرداخته بودم هنوز جذابیتی در آن نمیدیدم تصورم این بود که زمانی زندگیم معنی و مفهوم پیدا می میکند که هرگز دست به این جور کارها نزنم اما در روزی مثل آن روز که ویل در رخت خواب بود و به نظر می‌رسید دنیای بیرون از جنبش و حرکت افتاده است، می‌دیدم وقتی گوشه و کنار این ساختمان فرعی را نظافت می‌کنم تا حدی سر حال همینطور همینطور که سرگرم نظافت و گردگیری بودم، رادیو را با خودم از این اتاق به آن اتاق می‌بردم. صدایش را هم کم کرده بودم تا مزاحمتی برای ویل ایجاد نشود. هر از گاهی به داخل اتاق سرک می کشیدم تا مطمئن شوم اوزا رو به راه است و ویل نفس می کشد. اما وقتی ساعت از یک گذشت و او بیدار نشد کم کم نگران شدم. سبد هیزم را پر کردم. چند سانتیمتری از ارتفاع برفی که نشسته بود کم شده بود. یک لیوان نوشیدنی تازه برای ویل درست کردم و ضربهی به در اتاقش زدم. بار دوم محکم تر زدم. بله صدایش درگه بود ظاهرا از خواب بیدارش کرده بودم منم وقتی دیدم جوابی نداد گفتم لو هستم میتونم بیام تو؟ بیا این وسط که در حال رخص نیستم اتاق در سایه بود و پرده ها همچنان کشیده بودند وارد اتاق شدم چشمانم کم کم به تاریکی عادت کردند. ویل به پهلو خوابیده بود. یک دستش در جلو خم بود. گویی میخواست با تکیه به دستش صاف بنشیند. قبلاً هم که دیده بودمش طور بود. گاهی واقعا یادم میرفت که خودش نمیتواند قلت بزند. موهایش در یک طرف سیخ و لحاف محکم دورش پیچیده بود. اتاق بوی مرد میداد. با بدنی گرم و شسته نشده. اما آزاردهنده نبود. فقط کمی برای یک روز کاری عجیب بود کاری هست که انجام بدم نشیدنی میخوای میخوام جهت هم عوض کنم لیوان را روی قفسه کشوها گذاشتم و به طرف تختخوابش رفتم میخوای چیکار کنم آبدهانش را آرام قورت داد طوری که انگار برایش دردآور داور است بلندم کن تا به این پهلوشم بعد پاشتیه تخت و بده بالا اینجا اشاره کرد که جلوتر بروم دستتا زیرم بذار دو تا تو پشتم به هم گره بزن بعد عقبم بکش با تو روی تخت بذار اینجوری به کمرت فشار نمیاد نتوانستم تعجبم را پنهان کنم جلو رفتم بینیم از بوی او پر شد پوست گرمش کنار پوستم قرار گرفت بیشتر از این نمیتوانستم نزدیکش شوم مگر اینکه دهانم با گوشش تماس پیدا میکرد این فکر کمی عصبیم کرد تلاش کردم بر خودم مسلط باشم چی شده هیچی نفس عمیقی کشیدم دو دستم را به هم گره زدم و خودم را جا به جا کردم تا بعد که حس کردم دستم محکم زیرش قرار دارد عریزتر از انتظار من بود حتی سنگینتر. بعد به سه شماره او را به عقب کشیدم فریاد زد یا عیسی مسیح. نزدیک بود از دستم بیفتد گفتم چی شده دستداد چرا اینقدر یخن؟ خب آره اگه به خودت زحمت میدادی از رخت خواب میومدی بیرون میدیدی که بیرون داره برف میاد؟ شوخی کرده بودم ولی حالا میدیدم که تنش توی بلوز واقعا گرم است. گرمایی شدید که ظاهرا از ته وجودش برخواسته بود. وقتی داشتم به پشت بالش شتیکیاش میدادم، دادم ناله کرد. تلاش کردم تا تل امکان آرام و نرم حرکتش به ریموت کنترل اشاره کرد تا با آن سر تخت را بالا ببرم. زیر لب گفت: خیلی نه. کمی سرگیجه دارم. چراغ روی میز پاتختی را روشن کردم. غریزد، ولی من خودم را بهنشنیدن زدم. حالا می توانستم صورتش را ببینم. ویل. حالت خوبه؟ دو بار سوالم را تکرار کردم تا جوابم را داد خیلی خوب نیستم قرص مسکن میخوای آره قوی باشه پاراستامول خوبه؟ آهی کشید و به بالش دکیه داد لیوان آب را جلو بردم و نگاهش کردم که سر میکشید. بعد گفت ممنونم یک بار احساس کردم معذب هستم حالا هیچ وقت از من تشکر نکرده بود چشمانش رو بست لحظاتی در چارچوب در ایستادم و نگاهش کردم قفسه ی زیر بلوز بالا و پایین می رفت. دهانش کمی باز بود تنفسش تا حدودی سطحی بود و شاید نسبت به روزهای دیگر اندکی سختتر. اما من هرگز او را بیرون از صندلی چرخدار ندیده بودم برای همین با خودم فکر کردم شاید به دراز کشیدن مربوط می شود با نجوا گفت برو و من رفتم. ساعت و نیم مامی پیام فرستاد و گفت که پدرم نتوانست ماشین را به خیابان ببرد گفت که قبل از آمدن به خانه زنگ بزنم. نمیدانستم چه برنامه ای دارد. لابد میخواست بابا را با سورتمه و سن برنارد بیرون بفرستد. بخبر محلی رادیو گوش دادم برف و بوران غیر منتظر مشکلاتی به بار آورده بود در آزاد راهبندان راه بندان شده بود قطارها از حرکت بازمانده بودند. مدرسه ها موقتا تعطیل شدند با اتاق ویل برگشتم تا نگاهی به او بیندازم. از رنگی چهرهش ناراحت بودم. هر باری که به او سر زده بودم، دیدم چهرش رنگ پریده و روی هر دو گونش دانه های براغی نشسته است. آرام گفتم. ویل. هیچ تکانی نخورد. ویل. کم کم داشتم نگران می شدم. دوباره دیگر صدایش زدم. هیچ دوابی نگرفتم. تا اینکه رویش خم شدم. صورتش هیچ حرکتی نداشت. هیچ تکانی هم در قفسه سینهش نمیدیدم. نفسش نفسش را باید حس می کردم صورتم را نزدیک صورتش بردم و تلاش کردم بازدم نفسهایش را حس کنم وقتی نتوانستم دستم را جلو بردم و آرام به صورتش گشیدم تکانی خورد دهانش با صدا باز شد فقط چند سانتیمتر از دهان من فاصله داشت فوری خودم را عقب کشیدم و گفتم ببخشید. پلکی زد نگاهی با اتاق انداخت. انگار محیط برایش ناشنا بود. وقتی حس کردم شاید مرا نشناخته باشد گفتم لو هستم. کمی ابوس به نظر می رسید. میدونم سوپ میل داری. نه ممنوع. چشمانش رو بست یه مسکن دیگه بیارم قطرهای ریز و براغ عرق روی گونههایش هایش می درخشید لحاف هم گرم و از عرق خیس بود نگران شدم کاری هست که باید انجام بدم منظورم اینه که اگه نیتن نمیاد با نجوا گفت نه خوبه دوباره چشمانش را بست نگاهی به پوشه کردم گفتم شاید چیزی از قلم افتاده باشد قفصه داروها را باز کردم چشمم به دستکش های لاستیکی و وسایل پانسمان افتاد اصلا نمی دانستم به چه کاری می آیند. تلاش کردم با آیفون با پدر ویل صحبت کنم ولی ظاهرا کسی خانه نبود صدای زنگ حتی در بخش فرعی هم پیچیده بود میخواستم به خانم ترینر زنگ بزنم که در پشتی خانه صدا کرد. نیتن وارد شد. مفصل لباس پوشیده بود. شال پشمی و کلاه تقریباً سرش را میپوشند. با خودش جریانی از هوای سرد و برف هم را آورد. انگار خانه یک بار از خواب و خیال بیدار شد. گفتم وای خدا را شک اومدی. حالش خوب نیست. بیشتر صبح خواب بود. تقریباً چیزی هم نخورده. نیتن پالتویش را درآورد. مجبور شدم تمامش رو پیاده بیام. رو کار کند نیتن رفت سری به ویل بزند. من هم رفتم برایش چای بیاورم. هنوز کتری جوش نیومده بود که نیتن پیدایش شد. بدنش داغ داغه. از کی اینطور شده؟ از همون اول صبح خودمم دیدم چقدر داغه. ولی خودش گفت که فقط میخواد بخوابه. وای از صبح اینطوره طوره؟ که بدنش نمیتونه درجه حرارت رو تنظیم کنه؟ با دست مرا عقب زد و قفسه داروها را گشت آنتی بیوتیک قوی ترینش. یکی از گوتی را برداشت و توی حاون دستی انداخت و با عصبانیت مشغول آسیاب کردنش شد من پشت سرش ایستاده بودم گفتم پارست همول بهش ددم باید اینو هم همراش میدادی؟ نمی دونستم. کسی نگفته بود تمام فکر و خیالم پیش اون بود توی این پوشه لعنتی نوشته گوش کن ویل مسما عرق نمیکنه. در واقع از وقتی آستیت بیده اصلا عرق نمیکنه یعنی اگه کمی سردش بشه درجه حرارت بدنش قاطی کنه برو پنکه بیار روشن نگه می‌داریم تا دمای بدنش بیاد پایین حوله خیسام بیار داره گردنش بذاریم تا برف بند نیاد نمی‌تونیم ببریمش دکتر لهنت به این پرستاری که آجانس فرستاد. سو باید متوجه می شدن. تا آن روز نیتن را اینقدر عصبانی ندیده بودم. دیگر هم با من حرف نزد. رفتم تا پنکه بیاورم. تقریباً چهل دقیقه طول کشید تا دمای بدن ویل به سطح قابل قبولی رسید. همینطور که منتظر بودیم تبور قوی اثر بکند. طبقه دستور نیتن حاله خیس روی پیشانی و یکی هم دور گردنش گذاشتم. لباسش را درآوردیم و سییناش را با ملافه نخی خوب پوشاندیم پنکه را هم به طرفش گرفتیم حالا دستش لخت بود جای زخم کاملا نمایان بود و من وانمود کردم که ندیدم نیتن هم حرفی نزد ویل ساکت دراز کشید و گذاشت ما ازش مراقبت کنیم به سوال نیتن فقط با آره و نه جواب میداد گاهی هم جوابش چنان مبهم و نامفهوم بود که مطمئن نبودم اصلا حواسش باشد که چه میگوید. حالا در روشنایی میدیدم که واقعا مریض است. ناراحت بودم که چرا زودتر متوجه حال خرابش نشدم. تأسفم را بیان کردم. نیتن هم به من گفت که حالش به تدریج بد شده. گفت با دقت نبا چیکار چی تو یاد بگیری. شاید بعدا خودت نشبوشی دستنها این کار را انجام بدی میدانستم جای هیچگونه مخالفتی وجود ندارد. بعد نیتن را دیدم که شلوار ویل را درآورد و با احتیاط گاز پانسمان را از اطراف لوله کوچکی داخل شکمش برداشت. بدنش را به آرامی تمیز کرد و یک گاز دیگر گذاشت. این کارها واقعا به نظرم سخت می‌آمد. نیتن به من یاد داد که چگونه کیسه ادرار را عوض کنم. برایم توضیح داد که چرا کیسه همیشه باید تر از سطح بدن ویل باشد. اما وقتی دیدم که چقدر عادی و راحت کیسه پر از مایه گرم را با خودم از اتاق بیرون بردم، تعجب کردم. خیلی خوشحال بودم که ویل متوجه این کار من نشد. نه به این دلیل که شاید حرف تندی به من میزد. بلکه چون حس میکردم خجالت میکشد اگر ببیند من در جریان خصوصی ترین کارهایش قرار گرفتم. نیتن گفت، همین. سرانجام یک ساعت بعد، بیل در ملافه های تازه دراز کشیده بود و داشت چرت میزد دیگر مثل سابق بدحال به نظر نمی رسید. بخوابه. اما بعد از یکی دو ساعت بیدارش کن. یادت نره که حسابی بهش ما یاد بدی. ساعت پنجم دوباره دواره بهش تب بر بده. متوجه شدی؟ به احتمال قوی درجه حرارت بدنش تا یه ساعت دیگه پایین میاد. ولی تا قبل از ساعت پنج قرص نده. همه را یاد د می ترسیدم مواد اشتباهی مرتکب شوم اصلا باید همه این کارا رو دوباره تکرار کنی میتونی که؟ نیتن خودش را مثل اسکیموها پوشاند و راهی خیابانهای برفی شد فقط یاد داشتار بخون اصلا هم نترس هر مشکلی پیش باید به من زنگ بزن بهت چیکار کنی حتی اگه لازم شد خودم میام بعد از رفتن نیتن توی اتاق ویل ماندم چنان وحشت زده بودم که نمیتوانستم ترکش کنم گوشه اتاق مبل راحتی چرمی بود کنارش هم چراغ مطالعه شاید مال زمان سلامت ویل بود کتابی از کتابخانه برداشتم و روی مبل لم دادم و سرگرم خواندن داستانهای کتا شدم اتاق به طرز غریبی ساکت و آرام بود از لای پرد دنیای بیرون را می سراسر سفید بود، زیبا و پر از آرامش، خانه گرم بود و در سکوت فرو رفته بود، به جز تیک تاک نامعنوس ساعت و صدایی دستگاه گرمایش که رشته افکارم را پاره می کرد، هیچ صدایی به گوش نمی رسید. مشغول مطالعه بودم، گاهی همسرم را بالا می گرفتم و به ویل نگاه می کردم. آرام و ساکت خوابیده بود، با خودم فکر کردم که تا به حال در عمرم پیش نیامده است، اینطور خاموش جایی بنشینم و کاری انجام ندهم در ای خانه مثل خانه ما که همیشه صدای جارو برقی صدای بلند تلویزیون و جی هست بیر ممکن است آدم با عادت به سکوت بزرگ شود در مواقع نادری که تلویزیون خاموش بود پدرم آهنگهای الویس پریسلی را با صدای بلند پخش می کرد. این کافه که همیشه پرهایهو و پر جنب و جوش است. اما در این خانه صدای ذهنم را می شنیدم و می توانستم به صدای زربان قلبم گوشتم. در اوج شگفتی می دیدم که چقدر هم دوست دارم. ساعت پنج تلفن همراه هم علامت داد که پیام دارم. ویل تکانی خورد. من از مبل بلند شدم. خواستم پیش از اینکه صدای گوشی ناراحتش کند قطعش کنم. قطارها کار نمیکنن میتونی شب بمونی نیتن نمی توانه. کامیلا ترینر بلافاصله فاصله و بدون اینکه فکری کرده باشم جواب را نوشتم مشکلی نیست به خانهمان زنگ زدم و اطلاع دادم که شب می منم. مادرم ظاهرا خیالش راحت شد وقتی هم گفتم که بابت شبکاری مزده اضافه می دهند کلی زخر کرد دستش نصف نیمه روی گوشی بود گفت برنارد متوجه شدی؟ موز میدن که شب بمونه. فریاد شگفت زده پدرم را شنیدم که گفت وای خدا را شکر به شغل مطلوبش رسید. پیامی هم برای پاتریک فرستادم خبر دادم که شب باید سر کار باشم و بعدن تماس میگیرم. جوابش بلا فاصله رسید که نوشته بود امشب شب مسابقه دوی صحرایی تو برف. تمرین خوبی برای نرفش. تعجب می کردم که چطور ممکن است آدم از فکر اینکه با لباس ورزشی در دمای زیر 0 درجه تمرین دو کند تا این حد هیجان زده شود. ویل همچنان خواب بود. برای خودم غذا درست کردم. مقداری هم سوپ از فریزر بیرون آوردم تا اگر میل داشت بخورد. شومینهی اتاق نشیمن را رو روشن کردم. شاید هالویل اینقدر خوب شود که بتواند به آنجا بیاید. یک داستان کوتاه دیگر خواندم. مدتها بود برای خودم کتاب نخریده بودم. زمان بچگی عاشق کتاب خواندن بودم، اما یادم نمی‌آمد که جدیدا به غیر از مجله چیزی خوانده باشم. ترینا هنوز اهل مطالعه بود. یک جورایی احساس می‌کردم اگر کتابی بردارم و بخوانم، به حریم او تجاوز کردم. به ترینا و توماس فکر می کردم که قرار بود ما رو ترک کنن و بروند دانشگاه. هنوز نمیدانستم از این موضوع خوشحالم یا ناراحت. شاید کمی بیچیده از این حرفها بود و حسی بین و بینی داشتم. نیتم ساعت هفت زنگ زد. ظاهرم خیالش راحت شده بود که من شب می مانم. گفتم، نتونستم با آقای ترینر تماس بگیرم. حتی به ثابتش ثابتشم زنگ زدم. اما مستقیم به پیامگیر منتقل شد آه، لابد رفته رفته؟ با این فکر که قرار است تمام شب را با ویل تنها باشم ناخداگاه وحشت سراسر وجودم را فرا گرفت می ترسیدم دوباره اشتباه بزرگی مرتکب شوم و سلامتی ویل به خطر بیفتد دوباره به آقای ترینر زنگ بزنم؟ لحظه ای در آن طرف خط سکوت برقرار شد من بهتره بهتر نزنی. اما ببین لو هر وقت خانم ترینر شبو و تو شهر میمونه آقای ترینر هم خونه نمیاد یکی دو دقیقه طول کشی تا منظورش را بفهمم آه... همین که اونجا هستی کافیه اگه مطمئنی که حال ویل خوبه پس منم صبح اول وقت میاد گاهی لحظات به طور طبیعی سپری می و گاهی هم غیرعادی بعضی اوقات انگار زمان کش آمده است و بعضی اوقات هم زندگی. زندگی واقعی عین برق و باد آن شب سعی کردم خودم را مشغول کنم. تلویزیون تماشا کردم. غذا خوردم و آشپزخانه را نظافت کردم. چرخی در خانهی که سود و بود زدم. آقابت هم به اتاق ویل برگشتم. وقتی در را بستم تکان خورد. سرش را کمی بالا گرفت و گفت کلارک، ساعت چنده؟ صدایش از بالشی که مقابل دهانش بود خفه به گوش می رسید. هشت رب. دوباره سرش را پایین برد. نوشیدنی برام میاری؟ زبانش اصلا گزنده نبود و هیچ تیزی نداشت. گویی حالا که مریض بود بی دفاع و آسیب پذیر هم شده بود. یک لیوان نوشیدنی دادم و چراغ کنار تخت خواب را روشن کردم. لبه تخت نشستم و دستم را روی پیشانیش گذاشتم. کاری که مادرم در بچگی هم می کرد. هنوز کمی گرم بود، اما اصلا مثل قبل نبود. دستا چه سردن؟ هم شکایت کرده بودی. جدی؟ واقعا تعجب کرده بود. صوب میل داری؟ نه. راحتی؟ هرگز نفهمیدم واقعا چقدر درد می میخوام می خوام جهتم عوض کنم. به اون طرف بچرخم. لازم نیست بشینم. خودم را روی تخت جا به کردم. و با احتیاط تمام جهتش را عوض کردم. بدنش دیگر خیلی گرم نبود فقط دمای طبیعی بدنی را داشت که مدتی زیر لحاف بود کاری دیگه هست که انجام بدم نباید برمیگشتی خونه؟ نه مشکلی نیست شب میمونم هوای بیرون خیلی وقت بود که تاریک شده بود همینطور طور برف میبارید از پنجره ایوان را میدیدم که در حاله ای از نور زرد کمرنگ و قمنگیزی فرو رفته است. همانجا در سکوت آرامش نشستیم و به نور مصفور کننده و خلصه آور ایوان چشم دوختیم. سرانجام سکوت را شکستم و گفتم میتونم چیزی ازت بپرسم؟ دستش روی ملافه بود. عادی و طبیعی به نظر میرسید. قوی و سالم. ولی هیچ کاری از این دست ها بر نمی آمد. واقعا نجیب بود. گفت حetz میزنم چی میخوای بپرسی هنوز جای زخم روی مچ دستش برای من سوال بود اما چیزی نبود که بتوانم مستقیم بپرسم چه اتفاقی افتاد یک چشمش را باز کرد چطور شد که اینطور شده؟ وقتی تصدیق کردم دوباره چشمش را بست با موتورسیکلت تصادف کردم نه با موتور خودم من فقط عابر پیاده بی بودم فکر می موقع اسکی پرش باکش یه این جور چیزا شده همه همینطور فکر میکنن. این هم شوخی کوچولوی خدا از خونه بیرون اومده بودم و داشتم میرفتم اون طرف خیابون این خونه نه خونم تو لندن. به کتابهای کتابخانه اش زل زدم در کنار رومان ها و کتابهای جل چمیز و ورق خورده ی پنگوان کتابهای با عناوین کار و تجارت بود. قانون شرکتها، خرید سهام شرکت، دفترچهای راهنمای اسامی که من شناختی از آنها نداشتم. الان از هیچ راهی نمیتونی به شغلت ادامه بدی؟ نه. دیگه نمیتونم توی آپارتمان خودم باشم و مسافرت برم. دیگه زندگی ندارم فکر کنم دوست دختر سابق همه دیده باشی درنگی که در آهنگ صدایش بود ترخیر را از کلامش دور نمی کرد. زمانی بود که اصلا فکر نمی بتونم زنده بمونم بدت میاد منظورم از زندگی تو اینجاست آره هیچ راهی وجود داره که دوباره بری تو لندن زندگی کنی ؟ نه اینطوری نه. اما تو بهتر میشی منظورم اینه که علم پزشکی در مورد این نوع ها پیشرفت زیادی کرده. ویل دوباره چشمانش را بست منتظر منتظرماندم بعد بالش را پشت سرش تنظیم کردم. و لحاف را رو روی سینه صاف کردم. شق و رق نشستم و گفتم ببخشید اگه زیادی سوال کردم. روستری برم؟ نه کمی دیگه به حرف بزن. آب دهانش را گرد داد. چشمانش را باز کرد و نگاهش به طرف من کشیده شد. به شدت خسته به نظر می رسید. حرفای خوب بزن. لحظه ای مکس کردم. بعد به بالشتک هایی کنارش تکیه دادم. توی اتاق نیمه تاریک نشسته بودیم و به دانه های نیمه روشن برث که در سیاهی شب ناپدید میشدند شدن زل زده بودیم. سرانجام به حرف آمدم. میدونی منم همیشه به پدرم می گفتم برم حرفه خوب بزن. اما اگه بگم که معمولا چه جوابی به من میداد فکر می کنی چه خولی بودم من. بیشتر از من؟ وقتی کابوس میدیدم یا دلم می یا از چیزی ترسیده بودم برام آواز می <تصفيق> خندیدم اوه نمی تونم. بخون همیشه برام ترانه مولهونکی هنکی چه ترانه ای؟ <تصفيق> ترانه مالهانکی. فکر می کرد همه بلدند با نجوه گفت کلارک حالا تا برای من بخون. نفس امیغی کشیدم و چشمانم را بستم. شروع به خواندن کردم. ای کاش توی سرزمین کی زندگی می کردم. وای خدایا. نفس تازه کردم و ادامه دادم. سکوت کوتاهی برقرار شد شدخل شدی همهتون خولید <تصفح> اما موثر بود چه صدای بدی هم داری امیدوارم صدای پدرت بهتر باشه میدونم که با این حرفت چی میخوای بگی داری میگی دو چیز کلارک متشکرم که تلاش کردی سرمو گرم کنی قبول کلارک فکر کنم به اندازه تمام کارهایی که روانشناسسا برام کردن موثر بوده بازم حرف بزن هرچی دوست داری؟ چیزی که به آواز مربوط نشه؟ کمی فکر کردم آها فهمیدم پیروز داشتی به کفشام نگاه می کردی حواسم م... نبود. خب مادرم میگه داستان پوشیدن کفش غیرعادی برمیگرده به سه سالگی. یه جف چکمه آبی فیروزه بربرقی جیغ برام خریده بود اون زمان چیز عجیب و غریبی بود بچه ها فقط سبزشو می پوشیدن. یا اگه خیلی خوش بودن قرمزش مادرم میگه از روزی که اون کپش رو برام خرید من دیگه حاضر نشدم از پام در توی رخت خواب حموم مهد کودک حتی تموم تابستون پام بود اون کفش های برقبرقی و جراب شواری با طرح زنبور لباس مورد علاقم بود با تره زنبور؟ آره راه راه زرد و سیاه مثل زنبور چه جالب آره ولی کمی تند و زننده بود آره خب چشمو میزنه شاید چشم تو رو بزنه اما ویل ترینر. باید بگم همه دخترها برای خوش آمده مردا لباس نمی بوشن حرف مفته نه نیست. زن و هر کاری که انجام میدم مردا رو توی فکرشون دارن. اصلا هر کاری آدما میکنم به روابط مرد و زن برمیگرده. ملکه سرخو نخوندی؟ نمیدونم از چی حرف میزنی. اما میتونم به بد اطمینان بدم که اینجا روی تخت ننشستم و آواز نمیخونم چون دنبال این چیز هستم. سه ساله که بودم از ته دل دوست داشتم پام راه راه باشم. احساس می کردم استراب و دلهورهی که تمام روز مرا رو در چنگ خود گرفته بود با هر ای که ویل می گفت کاهش می یافت. حالا دیگر پرستار معلول فلک ای نبودم بلکه کنار یک آدم تن زن قهار نشسته بودم و گپ می زدم. خب بعدش چه بلای سر اون چکمه های خوشگره برق اومد؟ مادرم مجبور شد بندز دور. انگاشم افونت قارچی گرفته بودم. چه عالی جوراب شلواری رو هم انداخت دور چرا؟ هیچ نفهمیدم چرا اما این کارش قلبم رو شکست هیچ وقت نتونستم یه جوراب شلواری پیدا کنم که به اون اندازه دوستش داشته باشم. دیگه از اون مدل نداشتن یا اگه هم داشتن چه بود مم. چه عجیب آه تو هم مسخره کن هیچ وقت نشد تا این حد عاشق چیزی بشی؟ حالا اتاق کاملا در تاریکی فرو رفته بود و به سختی ویل را می دیدم. می توانستم چراغ را روشن کنم. ولی چیزی ما نهم شد. آره شدم. آره عاشق شدم. به شدت پشیمان شدم که چونین این سوالی کرده بودم. کمی بیشتر حرف زدیم. بعد ویل خوابش برد همانجا دراز کشیدم و نفس کشیدنش را تماشا کردم گاهی به ذهنم میرسید اگر بیدار شود و ببیند که اینطور به به اوزور زدم به موهای بلندش و چشمان خسته و تحریشش چه میگوید؟ اما اصلا نمیشد جهتم را عوض کنم ده هزات شگفتنگیز و دور از تصافاری بود انگار زمان متوقف شده بود فقط من در خانه بودم و میترسیدم تنایش بگذارم کمی بعد از ساعت یازده متوجه شدم دوباره عرق کرده است تنفسش سطحی شده بود بیدارش کردم و تبر دادم چیزی نگفت فقط زیر لب تشکر کرد ملافه و روبالشی را رو عوض کردم بعد که دوباره خوابش برد کمی آن طرف در دراز کشیدم مدت ها طول کشید تا خوابم کسی صدایم کرد و من از خواب بیدار شدم داشتم خواب میدیدم. توی کلاس بودم روی میز تحریر خوابم برده بود و معلم داشت تق تق به تخت سیاه میزد چندین بار اسمم را تکرار کرد. میدانستم باید جواب بدهم میدانستم از نظر معلم خوابیدن در کلاس کار زشتی است اما قادر نبودم سرم را از روی میز بلند کنم. لویزا؟ ها لویزا میز واقعا نرم بود چشمانم را باز کردم صدا از بالای سرم می آمد. آرام ولی محکم بود لویزا من توی تخت خواب بودم پلکی زدم و چشمانم رو جمع کردم بعد وقتی درست نگاه کردم کاملا ترینر را دیدم که بالای سرم ایستاده است پالتوی پشمی زخی می پوشیده و کیف دستیش از شانه آویزان است. لویزا؟ سری از جایم بلند شدم. کنار من ویل زیر لحاف خوابیده بود. دهانش اندکی باز بود. آرنجش در گوشه سمت راستش خم بود. نور از پنجره به داخل می تابید و خبر از صبحی سرد و روشن میداد. چیکار چی کار می اسمی کردم وسط یک کار خلاف موچم را گرفتند. دستی به صورتم کشیدم. تلاش کردم افکارم را جمع جور کنم. چرا اینجا هستم؟ چه جوابی برایش داشتم؟ توی رخت خواب ویل چیکار کار می آرام گفتم. ویل... آه. آه. ویل حالش خوب نبود. با خودم فکر کردم باید چاشش مواظبش باشم. چی میگی؟ حالش خوب نبود. ببین، بیا توی حال. از اتاق بیرون رفت. پیدا بود که منتظرم است. دنبالش رفتم. همانطور که داشتم میرفتم دستی به لباسم کشیدم و صاف کردم. بد جوری حس میکردم که آرایشم به تمام صورتم پخش شده است. در اتاق ویل را پشت سرم بست. مقابلش ایستادم، تلاش می کردم افکارم را جمع و جور کنم. با دستم اونهایم را مرتب می کردم. ویل تب داشت. نیتن وقتی اومد تبش رو پایین آورد، اما من چیز در مورد تب نمی دونستم. برای همین می خواستم تمام حواسم بهش باشه. نیتن گفت که لحظه ایم تنهاش نظرم. صدایم گرفته و خام بود اصلا نمیفهمیدم چه دارم میگویم چرا به من زنگ نزدی؟ اگه حالش بد بود باید فوری با من تماس میگرفتی. گرفته یا با آقای ترینر یک باره به خودم آمدم آقای ترینر اوه خدای من نگاهی به ساعت کردم یک روبه هشت بود من تماس ظاهرا نیتن لویزا ببین مرشک که نمیخواستی هوا کنی اگه ویل اینقدر مریض بود که توی رخت خوابش بخوابی پس باید با من تماس میگرفتی بله پلکی زدم و به زمین چشم دوختم نمیفهمم چرا به من زنگ نزدی به آقای ترینر زنگ زدی نیتن گفته بود چیزی نگویم من... در آن لحظه در ساختمان باز شد و آقای ترینر ظاهر شد. روزنامه زیر بغلش بود. تونستی برگرده؟ دانه های برف را از روی شانه می تکند. با هزار مکافاد رفتم اون طرف خیابون روزنامه و شیر خریدم. خیابونا بدجوری بد خطرناک شدن. مجبور شدم رامو کش کنم تا پا روی یخا نذارم. خانم ترینر نگاهش کرد. لحظه هی حیران مندم. آیا واقعا متوجه نشده بود همان لباس دیروزی تن شوهرش است؟ خبر داشتی حال ویلدی شب خوب نبود. آقای ترینر به من نگاه کرد. سرم پایین بود و به زمین چشم دخته بودم. هیچ وقت اینقدر قدر نبودم. لویزا به من زنگ زدی؟ متاسفانه نشنیدم. لاو دایفون کار نکرد. اخیرا چند بار پیش اومده که متوجه زنگ آیفون نشدم حالا خودم هم دیشب خوب نبود بیهوش افتاده بودم هنوز جورا به ویل پایم بود به آنها زل زدم شاید خانوم ترینر برای آن هم دوایم میکرد اما ظاهرا حواسش نبود خانوم ترینر گفت <سؤال> کلی درد سر کشیدم تا خودم رسوندم خونه خستم حالا هم ویلو به خودت میسپارم اما اگه دوباره چیزی پیش اومد فوری به من زنگ بزن فهمیدی؟ نمیخواستم به آقای ترینر نگاه کنم فقط گفتم بله و سری به آش بسخنم